شاید پرسیدن که متأسفانه صحبت هایم با نامحرم زیاد شده برای بهتر شدن این وضعیت راهنمایی می‌کنید می زمینه کنه انسان باید به طرف گناه نره یکی از مشکلاتی که صحبت با نامحرم صحبت بیش از حد نیاز پیش میاره بیبرکتی در عمره هم برای دان کتاب کمشه